بسم الله الرحمن الرحیم در این درس نائب فاعل نائب الفاعل اذا کان ظرفا او, او دقت بفرمایید او جارا و مجرورا او مصدرا نائب فاعل زمانی که ظرف باشد یا جار و مجرور باشد یا دیگه چه باشد مصدر باشد نقل الخبر نقل الخبر يظن القطار متأخرا أعلم عليما علي الياسا مضرا مثال در گروه اول فعل ها متعدي بودند و همون حالت عادي نهاب فاعل الخبر نائب فاعل بود قطار علي و انس بودن نائب فاعل اما دقت بفرمایید اما دقت بفرمایید در امثله بعدی یعنی سه گروه بعدی گروه 2 و و سهرت لیلتن قمراءو صدرا استفسار بجون چی چه میگه به تمرقول عارف به بله میگیره؟ از الناس علیما نه مشکلی نداره بستگی داره, داره که اون زمانی که معلوم بوده متعدیش که چی گوده بوده عدیمان و عدیم بر دو ببینید اگر ما فعلی داشته باشیم معلوم که دوتا مفعول به داشته واشن یکی میاد جای نائب فعال میشه یکی همونجا سر جای خودش مفعول به باقی باقی می میمانه الان فهمیدید؟ بریم جلوتر سهیرت لیلتون قمراءو سکتت ساعت الامتحان یمشا اما مکر در این سمثال نائب فاعل ما چه هست؟ و ظرف هست ظرف زمان یا مکان فرقی دا دارد اما مکان هست لیلا و ساعت چه هستن؟ زمان اما در أمثلة غروحي سوفم ذوهيب إلى منزل منزلك لك إلى من زلق في شمال لامرو فتحه داري أو كسره؟ منزلق بالكسره هست ذوهيب كتاب اشتباه چاپي فتحه داري ذوهيب إلى منزلق فرحة بالنجاح أخي يجلس في الحديقه داريم سمثال نائب فائل چه هست؟ جار و مجروم هست نائب فائل ما چه جار و جارو مجروم هست در گروه چهارم دقت بفرمایید یس سجود سجود الخاشعین یس ازدحام شدید فی الاسواق حجم حجوم عنیفن هجوم، هجوم عنیفن حالا قوائد رو از 49 تا پنجای دقت بفرائی قائده چلون هوم اذا الفعل متعدیا باكثر من مفعول زمانی که فعل متعدی باشد و بیش از یک مفعول داشته باشد ثم بونی للمجهول سپس چی شود؟ مجهول شود, شود. ناب المفعول الاول مناب الفاعل. مفعول به اول جای فاعل را میگیرد نائب فاعل می شود و بقیه ما عداهما منسوب اما بقیه منصوب چی می شوند باقی میمانند بقیه منسوب باقی میمانند این قاعده 49ام بود اما قاعده 50ام یبن اللازم للمجهول اذا كان نائب الفاعل جارا وجارا واجرا او ظرفا او مصدرن مختصینی متصرفینی میگوید فعل لازم فعل فعل لازم بنای مجهول می شود یا مجهول می شود زمانی که نائب فائل جار و مجرور باشد نائب فائل باشد؟ میگه فعل لازر مجهول میشود زمانی که نائب فعال چی باشد؟ جار و مدرور باشد مانند ذهب با ایلا منزلک یا ظرف باشد مانند سهرت لیلت القمراء او مصدرن یا مصدر باشد مانند یس جدو سجود الخاشین مختصینی متصرفینی مختص و متصرف باشند یعنی ظرف و مصدر منظور از این چه منظور از متصرف یعنی همیشه یک اعراب رو نداشته باشند ما بعضی از ظرف ها رو داریم یا مصدر ها رو که اعرابشون همیشه چه بعضی از ظرفه ها رو داریم همیشه منصوبند دیگه اونا متصرف نیستند اونا میگند غیر متصرف مانند چی؟ مانند قط مانند چی؟ او اینها ظرف هستند ولی چی غیر متصرفند ظرف های متصرف مانند لیله مانند ساعه مانند امامک اینا بیتونند ایراب رخو بگیرند میتونن دیگه چی گیرن؟ جه رو بگیرن؟ ولی قط و عب همیشه اعرابشون چه همیشه اعرابشون چه هست؟ آیشه این همیشه, رو... همیشه لازم... لازمان لازم اینا رو میگن غیر متصرف یه مبنی نیستانه مورابن غیر متصرف آره به خاطر این چون یک اعراب رو دارن همیشه منصوبند بهشون میگن غیر متصرف اینجا گفته بود چه زمان زدفو هستر میتوانند نائب فاعل باشند زمانی که ظرف و مصدر چی باشند متصرف باشند غیر متصرف نباشند و مصدر غیر متصرف مانند چی؟ مانند کلمه سبحان همیشه چی هست؟ منصوبه سبحان الله پس فعل مجهول می شود زمانی که نائب فعال ظرف یا جار و مجرور یا مصدر باشد ولی ظرف و مصدر باید چه باشند متصرف باشند غیر متصرف رو که فهمیدید منظور از غیر متصرف اونایی که بر یک اعراب صابتند پنجاییک یثبتو لنایب الفائلی باز هم همچنین مختصین متصرفین چنین؟ مختصین متصرفین مستر زرف هر باله هم مستر هم اون جارو رو مجرور که دیگه نداره این خاصیت رو یثبتو لنائب الفائلی جميع احکام الفاعل سابقه ثابت هست یا ثابت می شود برای نائب فائل تمام احکام فائل یعنی چی؟ یعنی فاعل مرفوع بود پس نائب فائل چه فائل اگر موانس حقيقي ميبود وبين فائل فاصل نبي, نبي فائل بسيكلي تي ميامات نو ابي فائل هم من جرياس رسو انجا ديقات كوليت رأيتو ديقات كوليت نصرتو امرأتان نصرتو امرأتان مصيرت امرأتون فاهمي فایل به شکل چه بکار رفت محنس بکار رفت رفت یکی هست یعنی محنس مزکر ولی موقعی که مجهولش هست میشه بعد محنسش کنی اصلا مثال دیگه دیگه قد نصر علی زینبه نصیرت زینبه همون احکامات فایل رو میگیره دیگه نائب فایل نصیر خب نصیر تو امراتن خب این دیگه نمیشه خاطر این که تو نایب فعال هست امراتن دیگه چیزی دیگر میشه اون باقی نایب فعال نمیشه تو کجای دانیایی خب بحث تمام شد